سلام رامین، حال شما چطور است؟ سلام، متشکرم آیا شما در ساختمان یک هستید؟ نه، من در ساختمان یک نیستم پس شما در ساختمان دو هستید؟ بله، اتاق من در ساختمان دو است. من یک اتاق جدید میخواهم اتاق جدید؟ چرا؟ من یک اتاق جدید می‌خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است. ما در اتاق یک تخت خالی داریم. شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ بله. به اتاق ما بیا. آلیست. است.